سلام. بارزه درود و سلام خدمت شما عزیزان همیشه همراه. با یکی دیگه از داستان‌های مردم قلقلسان در خدمت شما هستم. این داستان بدرچین زیرک به نام خدا سالها پیش بدرچین زیرک و باهوشی در مغالستان زندگی میکرد اون خونه نداشت آواره بود و از جایی به جای دیگه میرفت و از راه صدقه های مردم زندگی میکرد روزی در دشت به مرد مغاله غمگینی برخورد کرد که دم اصفی را گرفته بود و راه میرفت بدرچین جلو رفت و پرسید چرا پیاده میری اسف تو چیکار کردی مرز مغول در حالی که مثل بارون اشک میریخت گفت بیچاره شدم ها اسرم خوردند و فقط دمشو به جا گذاشتند بدبخ شدم من بدون اسب میمیرم بدرچین گفت خودتو ناراحت نکن دم رو به من بده و همینجا منتظر باش آنچنان اصفی برات بیارم که دیگه اسب قبلی رو از یاد ببری مرد مغول ناواورانه دوم اصف رو به اون داد و در سایه درختی منتظر موند تا ببینه که چی میشه بردرچه این در اون نزدیکی جایی رو میشناخ که مرد تمحکاری چادر زده بود اون لانه خرگوش رو پیدا کرد که از چادر مرد تمکار زیاد دور نبود کران لانه نشست و دوم رو در لونه فرو کرد و به انتهاش رو توی مشت خودش گرفت با صدای بلند داد و بیداد کرد پس از مدتی مرد تمکار سمور برای یکی از بهترین اصف خودش از راه رسید و گفت چه خبره چرا اینقدر سرصدا می کنی بعد از اسب خودش پیاده شد و رفت جلو دوم اصف رو توی دست بدرچین دید پرسید چرا دوم عصر رو به دست گرفتی؟ و این جواب داد عصفم رو گذاشته بودم تا بچره ولی اون داخل این سوراخ رفت و هر کاری میکنم بیرون نمیاد اگر خدا کمکم کنه به وسیله این دوم میگیرمش و وگرنه عصفم از دستم میره بعد نفس نفس زد و گفت باید کمی استراحت کنم و بعد اونو بیرون بیارم مرد تمکار نگاهی به درون سراخ کرد که تاریک و سیاه بود چه ناسبی داری؟ تندروه یا نه؟ بدرچین با آب و تاب از اسب خیالی تعریف کرد که معلیکست و روزی هفت بار مرا رو به دور زمین میچرخونه و اصلا خسته نمیشه رنگش به سفیدی برف‌های روی های روی و وقتی در استبلیسته یالش به عرف آسمون میرسه مرد از تعریف های بدرچین به شوق اومد و از خود بیخود شد بد حرچین کنار زد و دوم رو به دست گرفت و فریاد زد ای ابله چه کسی به تو اجازه داد که اسب تو برای چریدن به مرتی من بیاری بدرچین گفت ببخشید قربان مرد با عصبانیت فریاد زد فورا اینجا برو بدرچین گفت پاهام درد میکنه و نمیتونم راه برم مرد تمکار که فکر میکرد صاحب یک اسب نجیب و عالی شده گفت بسیار خب بسیار خوب من دم عصر رو نگه میدارم تو اصف من رو سوار شو و برو دیگه همین طرف ها پیدا نشه و در خوشحال و راضی از این معامله سوار من شد و به سرعت به سوی ده تاخت مرد ماغل در سایه درخت هنوز انتظار می کشید و در اصر رو به اون داد و پیاده به راهش ادامه داد هنگام بعد از ظهر مرد ثروتمندی رو دید که دیگی پر از آبگوشت سر گذاشته بود و کنار ایستاده بود این مرد خیلی شکم و مال دوست بود هر وقت از شادورش بیرون میرفت غذاهایی رو که در منزل داشت با خودش می برد چون میترسید وقتی که در خونه نیست غذاها رو کسی بخوره مرد ثروتمند تا چشمش به بدرچین افتاد حواس کرد که سر به سرش بذاره چلوش رو گرفت و گفت شنیدم به راحتی مردمو فریب میدی بدرچین گفت اینطور میگن مرد گفت آها اه اونایی که رو تا به حال فریب دادی نادوم بودن یه مرد باهوشی مثل من هیچ وقت فریب تو رو نمیخوره اگر دوست داری امتحان کن بدرچین نگاهی به مرد و دیگه آغوشتی که به سر داشت کرد و گفت نه نمیتونم تو رو فریب بدم و بعد از مکس کتایی گفت آسمون ابریه مطمئنم فردا بارون میاد مرد ثروتمند یک لحظه به آسمون نگاه کرد اما در همین لحظه دی از روی سرش به زمین افتاد و تکه تکه شد بدرچین خندید و از اون دور شد و گفت حالا دیدی تو هم مثل همه فکر میکنی دانا و باوشی؟ بدرچین به راهش ادامه داد و کمی گره رفت به حاکم رسید حاکم بادی به قبغب انداخت و سر تو پای اون رو که لباسی پاره بتن داشت برانداز کرد و گفت تو تو کی هستی؟ چادرت کجاست؟ این طرف چیکار کار میکنی؟ بدرچین جواب داد من خودم هستم چادر ندارم و هر کاری که بخوام انجام میدم حاکم از این گندگویی خشمین شد و گفت چرا دروغ میگی؟ من که حاکم هستم نمیتونم هر کاری رو انجام بدم بدرچین لبخندی تحویل حاکم داد و ادعا کرد شما نمیتونید. ولی من میتونم حاکم از گوشه چشم نگاهی کردش و گفت راستی پس کاری کن که منو از اسب پایین بیاری بدخشین جواب داد حق با شماست من نمیتونم حاکمی مثه شما رو وادار کنم تا از اسبش پایین بیاد اما اگر شما از اسبتون پایین بیاید میتونم شما رو مجبور کنم تا سوار اسبتون بشید حاکم خندهای کرد و گفت جدی بعد از اسب خودش پایین اومد و گفت خب حالا سعی کن من مجبور کنی تا سوار اسبم بشم. بدرچین پوسخندی زد و گفت حالا دیدید من برنده شدم. شما از من خواسته بودید تا شما را از اسب پایین بیارم و من این کار رو کردم. شما الان روی زمین ایستادید حاکم اصبانی و کلافه از پوسخند و برق نگاه بدرچین سوار اسبش شد و فریاد کشید. خوب دیگه بیش از این نمیتونی منو فریب بدی. بدرچین از شادی دست‌های خودش رو به هم کوبید و گفت: ر حالا شما برای دومین بار فریب منو خوردید و من شما رو مجبور کردم تا سوار اسبتون بشید. حاکم مات و محبود مونده بود. بدرچین دیگه چیزی نگفت و به راه خودش ادامه داد. بله دوستان این هم یکی دیگه از داستان‌های مردم مغولستان بود که تقدیم حضور شما شد و تشکر می‌کنم از اینکه تا به انتهای این داستان هم با من همسفر بودید. شما را به خدای بزرگ می‌سپارم و امیدوارم با سری داستان‌های جدید دیگه در خدمت شما دوستان عزیز باشیم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان. مراقب خوبی‌های خودتون باشید.